این داستان نوح راهب آقای کاکیومون اهل اوزاکا بود چون خانواده فقیر داشت و تنها مونده بود تصمیم گرفت که بره و بختش رو در یه دو پای تخت قدیم ژاپن آزمایش کنه اون جوونی با اراده بود و چون تصمیم می گرفت بیدرنگ اونو انجام میداد. از این رو فردای اون روز به سوی یدو حرکت کرد بعد از رسیدن به یدو، چند روز در بازار از تجارتخونه ای به تجارتخانه دیگه رفت تا کار خوبی پیش بازرگان توانگری برای خودش دست و پا کنه چون در حسابداری مهارت داشت و با مشتری و با ادب و مهربان برخورد می‌کرد می تونست دوست ها رو بشناسه و فورا از تجارتخونه بیرون بندازه به زودی پیش بازرگان محبوبیتی پیدا کرد و مورد اعتماد اون قرار گرفت به نظر می رسید که بخت به روش لبخند می زنه. روزی کاکیمان برای کاری فوری به خونه کارفرماش رفت. در باغچه خونه چشمش به دختری افتاد که زیبایی انگیزی داشت. دختر جوان در بین درختان قرق در گل و شکوفه گردش میکرد. اما در برابر زیبایی روی اون گلها جلبه نداشتند. کاکیمون دیوانه وار عاشق زیباروی ناشناس شد اما به زودی با یه دنیا غم و اندوه دریافت که اون یگان دختر بازرگان ثروتمنده و یقین حاصل کرد که بازرگان هرگز حاضر نمیشه دخترش رو به جوان بی‌نواهی مثل اون بده کاکیمون رو غم عشق ناتوان کرد اون از تفریح ها و خوشی های شهر دست کشید و هر وقت دوستاش از او دعوت می‌کردند که بعد از پایان کار با اونها به گردش و تفریح بره، دعوتشون رو رد میکرد از کوچکترین فرصتی که به دستش میفتاد برای رفتن به خونه کارفرماش بهره میگرفت و اغلب اتفاق میفتاد که در یک روز چندین پر به بهانه دادن خبر خوش به بازرگان توانگر به خانه اون میرفت و هر بار در کنار در به انتظار وای میستاد و آرزو میکرد که اورهان زیبا دختر بازرگان رو در اونجا ببینه. دختر جوان هم به زودی متوجه پسر جوان شد و اون رو که جوان زیبایی بود پسندید. طولی نکشید که دو جوان پنهانی نامه‌هایی با هم رد و بدل کردن و به این فکر افتادند که چطور پدر سخت گیر دختر و به ازدواج اون با کاکیمون راضی کند سرانجام کاکیمون تصمیم گرفت پیش بازرگان توانگر بره و از دخترش خاصگاری کنه اما چه کاری بود که کرد بازرگان از گستاخی اون بسیار خشمگین و عصبانی شد و به مرد جوان گفت چه فکری جوان بی سر و پایی که نمیدونه هفته بعد چطور شکمش رو سیر میکنه اومده و از دختر من خواستگاری میکنه زود از پیشه چشم دور شد دیگه نمیخوام چشمم برود بیفته کاکیمون، آنچنان نومید و افسرده شد که جرعت نکرد جوابی به این حرف بده بازرگان بعد از اون که خشمش فرو نشست انزکی آرام شد و با خودش فکر کرد به کاکیومون گفت اما برای این که به تو نشون بدم که من قدر کارمند خوب رو میدونم حاضرم حرفهای گستاخانه تو رو فراموش کنم تو میتونی در خدمت من بمونی اما حالا از برابر چشمم دور شو. و کاکیومون را از خونهش بیرون کرد اوران بعد از آگاه شدن از تصمیم خشن پدر بنای گریه و زاری رو گذاشت و آروم و قرارش رو از دست داد پدر اون نه تنها اونو از دیدن کاکی مون من کرد بلکه دو تا زن رو هم به عنوان نگهبان اون قرار داد. کاکیمون رو هم برای انجام دادن کارای بازرگانی خودش به نقطه های دور دست فرستا. به طوری که دو جوان حتی نمیتونستن لحظه همو ببینن و لبخند کوچیکی روی هم بزنند کاکیامون سخت به کار چسبید و هر سکه مسی رو که به دست و کنار گذاشت. اما اون به این ترتیب هرگز نمیتونست اون قدری پول جمع کنه و ثروتی به هم بزنه که بازرگان اونو برای دامادی خودش شایسته بدونه. اوران از غم دوری کاکیامون بیمار شد و در بستر افتاد. هیچ پزشکی نتونست اون رو درمون کنه، روز به روز رنگ پریده تر و لاغرتر میشد. هیچ حرفی رو جز حرفی که درباره باره بود نمیشنید. بازرگان توانگر بهترین پزشکان رو بر بالین اون آورد اما اونها کاری جز این نتونستن براش بکنن که سرشون رو تکم بدن و بگن از دست ما کاری ساخته نیست. بیماری دختر شما بیماری تن نیست. بیماری دله. هرگاه دختر خودش نخواد معالجه بشه بیماریش سخترم خواهد شد. سرانجام با بازرگان ناچار شد که تسلیم بشه چون اون بیشتر از یک انتخاب نداشت یا میباید کاکیومون رو به دامادی خود بپذیره و یا دخترش رو از دست بده اون کاکیومون رو پیش خودش صدا کرد و گفت تو خودت خوب میدونی که من نمیخوام تو داماد من بشی اما دخترم سخت بیماره و تنها در صورتی میتونه بهبود پیدا کنه که با تو ازدواج کنه اما تو هرگز ثروت منو به چنگ نمیاری. اینو خوب به خاطر بسپار تو باید از دختر من طوری پذیرایی کنی که شایسته دختری از خانواده توانگر و معتبره اگه از عهده این کار بر نمیای حرفش رو قطع کرد و آهی دردناک کشید و ساکت شد کاکیمون مدتی فکر کرد که کار کنه چون اون نگران سلامت اورام بود سرانجام فکری به سرش رسید چند روز مرخصی گرفت و به کسی نگفت که به کجا میخواد بره بازرگان خواهشش رو پذیرفت و به لحنی پرکنایه به اون گفت خوب به زودی خواهیم دید که آیا از دست تو کاری دیگه ای جز آهزاری برمیاد کاکیمون با شتاب بسیار خود رو به اوزاکار سون اون به یاد ورده بود که در نزدیکی شهر اوزاکار کاخ بزرگی که صاحبش یکی از امیران شهر بود خالیه و به حال خودش رها شده. اونجا از سالیان پیش غیر مسکونی بود و کسی درش زندگی نمی کرد چون اون خونه اجزاده ای بود. کاکیومون از شبه ها و حیوله ها نمی ترسید. اگرم ترسی از اونا داشت به امید اینکه اوران همسر اون میخواد بشه هر نوع نگرانی و ترسی رو از دلش بیرون می کرد. کاکیومون بعد از رسیدن به اوزاکا به خونه امیر رفت و اجازه شرفیابی گرفت و چون به حضور اون رفت با ادب زیاد به اون گفت حسرت امیر من به شما قول میدم که شبها و حیوله ها رو از کاخ شما بیرون کنم اما شما باید مدتی اون رو در اختیار من بگذارید امیر که متعجب گشته بود پرسید کاخو برای چه کاری میخوای؟ کاکیومون به امیر توضیح داد که برای عروسی خودش به کاخ احتیاج داره و برای اون تعریف کرد که بازرگان توانگر یه دو چه شرطی برای موافقت با ازدواجمون و دخترش گذاشته امیر از سرسختی و استقامت مرد جوان خوشش اومد و به اون وعده داد که کاخ رو تا مدتی به اون واگذار می‌کنه. اما به خنده به اون گفت به شرطی که در عروسی خودت شبه ها رو فرموش نکنی کاکیمون به یه دو برگشت بیدرنگ پیش بازرگان توانگر رفت و گفت هر وقت من دختر شما رو که اگر چه مردی توانگرید اما بازرگانی بیش نیستید در کاخ امیری پذیرایی کنم از من خوش میشید بازرگان به شنیدن این حرف با تعجب زیاد پرسید کاخ امیر چطور میخوایی اون رو به کاخ امیر ببرید کاپکمون گفت این دیگه به خود من مربوطه من میخوام شرطی رو که شما برا من گذاشتید انجام بدم شما عروس و همراه ها و مهماندارا رو به کاخ امیر اوزاکا بفرستید من اونجا منتظر دختر شما هستم بزرگان با خودش گفت این جوان گلیم خودش رو میتونه از آب بیرون بکشه جوان بی و پا و احمقی نیست شهامت و پشتگارم داره بزرگان توانگر شهر یه دو حالا دیگه نمیتونست مخالفتی با این ازدواج داشته باشه وقتی اوران یافت که با وجود همه دشواری‌ها و مخالفت های پدر سرانجام همسر کاکی میشه، حالش بهتر شد. لوپاش گل انداخت. بعد از دو روز از بستر بیماری بلند شد و در خونه شادمان این طرف اون طرف دوید. مراسم نامزدی در یه دو انجام گرفت. بعد مهمانها برای شرکت در جشن عروسی به کاخ امیر در اوزاکا رفتند. پس از پایان یافتن جشن عروسی کاکیومون و اوران در کاخ موندند. کاخ متروکه که تیرهای سخفش پوسیده بودند و در باخچه هاش علف قد آدم بالا اومده بود. خب کاکیومون تونست عروس رو به کاخ امیر ببره اما باید شکمه اونو خودش رو هم سیر کنه. این بود که به ماهی فروشی مشغول شد. اگه میخواست پول بیشتری به دست بیاره میبایست قبل از نیمه شب راه بیفته تا بتونه خودش رو به دورترین بازار برسونه، اون نیمه ها از کاخ بیرون میرفت و اوران در اونجا تنها میموند اون دوتا بسیار خوشحال بودن که سرانجام تونستند به هم برسند. کاکی و اوران مدتی در کاخ به سر بردن، اما هیچ اتفاقی نیفتاد، پاکی برای خریدن ماهی تازه از بندر و بردن و فروختن اون در بازار به قدری گرفتاری داشت که پاک فراموش کرد که کاخ زده است. اوران هم اصلا به فکر شبه ها نبود. از این رو از تنها موندن در کاخ ترسی نداشت. اما شبی تازه کاکیومون بیرون رفته بود که سه راه با جامعه های بلند سیاه ناگهان در برابرش ظاهر شدند. هر یک جمع کوتاه سیاهی به دست داشت که نوری تند و اطراف میپراکند اونها بیهی سر از پشت دیوارها به کاخ در اومده بودند و چون در برابر اوران قرار گرفتند با گامهایی خشک و آرام به صدا پرداختند و تا صبح در اطراف تختخواب عروس جوان رخصیدند بعد یکی بعد دیگری به طرف حسیری که اوران بر اون خوابیده بود اومدن و انگشت بر دهان خود گذاشتن و در سکوت و خاموشی اونا تهدید کردند در تمام شب ای از دهن اونها بیرون نیمد اوران بدون اینکه کلمه حرف بزنه بیباکانه رقص راهبان را تماشا کرد چون اونها رفتند اون نفس راحتی کشید و با خودش گفت بیگمان اینها همون شبهههایی هستند که کاکیوموند پیش از ازدواجمون درباره اونها با من صحبت کرده بود اما من نباید درباره اونچه امشب برام روخ داده حرفی با اون بزنم. چرا این کارو کنم؟ کاکی اومون نگران میشه، دیگه نمیذاره من تو کاخ دنها بمونم. در حالی که اون باید به بازار بره تا ما بتونیم چیزی برای خوردن داشته باشیم. چون کاکی به کاخ برگشت، اونان اون رو به شادی و خوشرویی استقبال کرد و غذا رو که آماده کرده بود آورد و, و با هم خوردند و بعد نشستند به گپ تا وقت آن رسید که کاکیومون به بازار برگرده اوران حتی کلمه هم درباره اون شب قبل دیده بود به کاکیومون نگفت و بعد از رفتن کاکیومون با بی منتظر شد که ببینه آیا راهبه ها باز هم میان؟ اون شب تا صبح چش به هم نزاشت اما این بار همه جا خاموش و آروم بود شب سوم، اوران از دور روشنایی دید که آهسته و آروم نزدیک شدند از پشت دیوار به کاخ اومدند اوران با خودش گفت: حتما اینها همون راهبههات و خودش نیز تعجب کرد که با دیدن اونها احساس آرامش کرد چون انتظار براش خیلی ناراحت کننده تر بود. راهبها خاموش و آرام نزدیک شدند. این بار جامعه‌های بلند سفید بتن داشتن و هر یک، شم سفید کلوفتی به دست گرفته بود. اونها خموشانه و با حرکتی خشک در برابر اوران به رقص درآمدند آممدند.ژره های شم در دست های اونها می لرزیدند و سایه های اونها بر کف و دیوار های اتاق میرقصیدند. راهبه ها بعد از دمیدن سپیده بامدادی یکی بعد از دیگری به اوران نزدیک شدند و انگشت بردهان گذاشتن و او را تهدید کردند و، بعد ناپدید شدن و اوران نتونست بفهمه کجا رفتند زن جوان که سه شب بی خوابی کشیده بود اونقدر خسته بود که هموندم به خواب رفت و تنها بعد از شنیدن خنده کاکی بیدار شد کاکی بهش گفت زهره تو هنوز خوابی؟ مگه امشب اتفاقی افتاده؟ اوران که هراسون شده بود بیدرنگ از جا بلند شد و قضا آماده کرد به همسرش گفت، میبینی چه زن لوس و نونوری داری؟ اون موقع که کاکیومون بیچارش زیر بار زنبیل سنگین پر از ماهی کمرش خم میشه، اون راحت و آسوده میخوابه. شب چهارم، کاخ در خاموشی و آرامش کامل فرو رفته بود و بعد از نیمه شب، راهبه ها نیومدند. اوران راحت خوابید تا صبح. از خواب بیدار نشد. شب پنجم بازم از پشت دیوار روشنایی هایی پیدا شده چون نزدیک تر اومدن، اوران سراه به زردپوش پوش در برابر خودش دید که نیمی از چهرششون رو پوشیده بودند. هر یک شمه بلند زردی با نوری خیره کننده به دست داشت. به های زرد پوش هم تمام شب رو در اطراف وستر اوران رخصیدن و صبح انگشت دهان گذاشتن و اونو تهدید کردند. اوران با کنجکاوی از خودش پرسید که، شب هفتون چه ظاهر خواهد شد؟ تازه کاکیامان از کاخ بیرون رفته بود. اوران دید که از هر سو روشنایی های به سوی کاخ میاد. از سمت جنوب سراهب سیاه بوش با شمع کوتاه سیاه. از سمت مغرب سراهب سفید بوش با های سفید کلفت و از سمت شرق سراهب زرد بوش با های بلند زرد رنگ به اون نزدیک شدند. نزدیک و نزدیکتر اومدن و چشم به اوران دوختند در برابر زن جوان به رخصی آرام و خاموش پرداختند اوران با خودش گفت امشب که همه راهبه ها تو اینجا جمع شدن چه اتفاقی میخواد بیفته ناگهان راهبان از رخص ایستادند و در برابر حسیری که اوران روی اون نشسته بود صف کشیدن یکی از راهبه زردپوش به صدای بم لرزانی گفت اران، تو زنی شجایی، سه شب با ما تنها موندی و حرفی نزدی و نترسیدی حالا ما هم به پاداش شجاعت تو میگیم که کیستیم گوش کن مدت ها قبل از این آتش جنگی حراس انگیز و ویرانگر سراسر کشور رو فرا گرفت در اون تاریخ پدر بزرگ امیر کنونی همه گنج های خودش رو پنهان کرد اما در جنگ از پای در اومد و راز گنج ها رو با خود به گور برد ما از قرن ها پیش در اینجا پنهان شدیم نه از نیروی خود بهرهی بردیم و نه سودی به مردمان رسوندیم دلمون میخواد که بین مردم برگردیم اما این کار با نیروی خاص ما امکان پذیر نیست یکی باید ما رو از زیر خاک بیرون بیاره تا کنون همه کسانی که ما در برابرشون ظاهر شدیم از ما ترسیدند و فرار کردند. کسی شجاعت و بیباکی تو رو نداشت. بعد از اون که راهب زرد داستانش رو به پایان رسوند، راهبه سیاه به اوران نزدیک شدن و اونو با خود به باخت بردند و در اونجا درخت گیلاس کهنسالی رو بهش نشون دادند و بعد ناپدید شدند. سپس راهبان سفید پوش آستانه در کاخ رو نشون دادند و اونها هم ناپدید شدند. سه راهب زرد پوش، اران رو به سردابی بردن و خودشون اونجا قیبشون زد. بعد از این شب هراسانگیز اوران افتاد و خوابید و تا بازگشت کاکیمون بیدار نشد. کاکیمون که از بازار برگشته بود اوران رو قلقلک داد و گفت که کم کم عادت میکنه که تا زور بخوابه. اما اوران نشست و که در هفت شب بر اون گذشته بود به کاکیمون تعریف کرد. بعد با هم به نزد امیر رفتن و به اون گفتند که شبه هایی که در کاخ ظاهر میشن کی هستند. امیر دستور داد جاهایی رو که راهبهها به اوران نشون داده بودند کندند و گنجهای پنهان رو پیدا کردند. در باغچه زیر درخت گیلاس کوزههایی پر از سکههای مسی زیر آسانه در ورودی کیسههایی پر از سکههای نقله و در سرداب صندوق پر از طلا پنهان شده بود. امیر با پیدا کردن این گنج‌های فراموش شده اونقدر شاد و خوشحال شد که پاداش بزرگی به کاکی و اوران دلیر بخشید. از اون بعد بازرگان توانگر نه تنها شرمنده نبود که دامادی چون کاکی داره بلکه بسیار خوشحالم بود. افتخار می‌کرد که دخترش رو به جوونی چون اون داده. قرآن اغلب رقص راهبان رو برای کاکیمون تقلید می کرد و هر دو با شادی میخندیدند. دوستان عزیز، امیدوارم که از داستان امروز لذت برده باشید. خدا نگهدار